استقلال چین غبیلای هرگز نتوانست و موفقیت هایی که در جوانی کسب کرده بود دوباره نائل شود و پیری او آکنده از ناامیدی شد. او پس از درگذشته همسرش چابی و درگذشته یکی از پسرانش گوشه نشین شد و در نوشیدن و خوردن افراد کرد. اووبلاایی در سال 1294 میلادی درگذشت و با مرگ او امپراتوریش فرو پاشید. تیمور پسر قبیلای که به عنوان خان بزرگ جانشین او شده بود کوشید تا سلطه بر چین را حفظ کند ولی او حتی کمتر از پدر خود از حمایت سایر خانها برخوردار بود در این زمان مقاومت چینیان در برابر مغلان نیز شدیدتر شده بود در دهه 1330 میلادی نحوه حکومت جانشینان قبیلای شورش های دهغانان، غهتی و تغیان رود زرد چین را دست خوش آشفتگی ساخته بود. دهگانی به نام چوی آنچانگ قیامی را رهبری کرد که از مغولان خلعیت کرد و سلسلی چینی جدیدی به نام مینگ حکومت مستقل را به چین بازگرداند. سلسلی مینگ همچنین مرمت دیوار بزرگ را شروع کرد تا از حمله دیگر مغلان به چین جلوگیری گیری کند. فروپاشی خننشین های مغل مسائل مشابهی سایر اولوسهای مغل را به ستوها ورد. در ایل خان نشین و هلاگو در ایران شماری مغل مسلمان شده جلوز کردند که نسبت به ایرانیان هم دردیه بیشتری داشتند. ابو سعید آخرین این فرمان روایان وارسی به جا نگذاشت و حکومت ایل خانان در سال 1335 میلادی خاتم یافت و ایران به حاکمیت بومی بازگشت. قدرت مغولان نه در مراکز شهری بسیار پیشرفته ای ایران و چین، بلکه در آسیای میانه و روسیه به صورت متمرکز و طولانی باقی ماند. خانان مغول به تدریج شروع کردند به گرویدن از شمنیسم به ادیان اتبای خود به خصوص اسلام. قلمرو غربی باتوخان یا اردوئے زرین در اوایل سده 14 میلادی اسلام را به عنوان دین حکومتی پذیرفت. در همین زمان، زبان ترکی به تدریج به عنوان زبان مورد تکلم طبقه حاکم جانشین زبان مغلی شد. بقایه یک امپراتوری تیمور لنگ آخرین نماینده قدرت و سرسختی مغلان در حدود سال 1350 میلادی به قدرت رسید. تیمور به طریقی همانند چنگیز، زمینه آینده خود را فراهم کرد. تیمور از نسل مغولان بود ولی در شهر پرور شیافته و یک مسلمان ترک بود. او ارتشی بر اساس اصول نظامی مغولان ایجاد کرد و حمله های تاراجگرانه ای را در آسیای میانه و خاور میانه فرماندهی کرد که با ویرانگری چنگیز خان قابل مقایسه بود. تیمور در سال 1405 میلادی در راه تسخیر چین درگذشت. او وارس یا کارگزارانی را برای جانشینی خود تعیین نکرد و اردوی زرین اندکی پس از مرگ او فرو پاشید. آخرین قطعه اردوی زرین در شپه جزیره کریمه به موجودیت خود ادامه داد تا اینکه که آن ناهیه در اواخر صده هجده میلادی در زمان سلطنت کاترین کبیر زمیمه روسیه شد خان نشین جغتای به احترام چنگیز خان که نفوز زیادی در آن ناحیه داشت تا صده شانزده میلادی باقی ماند اما در اوایل صده شانزده میلادی بابر شاهزاده ای از ماورا نهر که هم از نسل چنگیز و هم از نسل تیمور بود برای فرار از مقابل ترکان ازبک به هندوستان گریخت و با غلبه بر خاندان های سلطنتی شمال هند سلسله مغل همان بابریان گورکانیان را تاسیس کرد سلسله مغل بابر تاج محل را ساخت که به عنوان یادمانی بعید از معماری قومی با پیشینه کوچ باقی مانده است در اواخر سده 14 میلادی و در سده 15 میلادی چند رئیس مختلف قبایل مغل تلاش برای تسخیر دوباره چین به عمل آوردند اما آنها فاقد رهبری لازم بودند مغولستان میان دو گروه غبیله اصلی اویرات در غرب و خلخه در شرق تقسیم شده بود اویرات در حدود سال 1450 میلادی موفق به دستگیری امپراتور سلسله مین گردیدند ولی به جای انجام عملیات نظامی برای فتح ترجیح دادند که امپراتور را با گرفتن فدیه آزاد کنند. اویرات به سلطه براسی های میانه ادامه دادند تا اینکه در سال 1758 میلادی در برابر سپاهی از سوی سلسله منچو شکست خوردند. در این زمان مغولستان به بخش هایی تقسیم شد که امروز نیز وجود دارد. نواهی جنوب سهرای گوبی به تصرف چین در آمد. در حالی که مغولستان شمالی در ظاهر مستقل ماند و تحت سلطه روسیه قرار گرفت امروز مغولستان جنوبی موسوم به مغولستان داخلی که ناحیه‌ای خود مختار است تحت سلطه چین باقی مانده است اما از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مغولستان شمالی استقلال واقعیش اش را بازیافته است نهزت استقلال طلبانه مغولستان نماد آزادی خود را در نقش چنگیز خان یافته است. امروز مغولان با توسل به گذشته برجسته خود و یافتن نیروی دوباره بر اساس برطریهای نیاکان خود مبنایی برای حاکمیت خود یافتند. مواریس مغولان مغولان بیشتر به سبب قدرت نظامیشان مطرح می شوند. در تاریخ جهان، چنگیز غلم روی پهناورتر از غلم روی هر فرد دیگری را تسخیر کرد. با وجود این، او در دنیای غرب هرگز از شأن دیگر تشکیل دهندگان امپراتوری ماننده ناپل اون یا اسکندر کبیر برخوردار نشد. چنگیز را بیشتر به مسابه ویرانگری بزرگ به یاد می تا تشکیل دهنده امپراتوری که اقدامات مثبت نیز انجام داد با این حال مواریس مقالان متعدد است قانون و نظمی که چنگیز خان در مدت پدید آوردن وحدت میان قبایل در دشت پهناور برقرار کرد مقالان را از جامعهی متنازه به ملتی قدرتمند مبدل نمود ملتی که در امور بین المللی نقش امدهی ای ایفا کرد تغییراتی که رهبری و قانون نامه چنگیز خان پدید آورد باعث شد زندگی مغولان عادی و در بعضی موارد زندگی اهالی نواحی تسخیر شده پیشرفت زیادی کند تحت حاکمیت امپراتوری مغول بازرگانی پیشرفت کرد در این دوران کارگران ماهر را از چین، ایران و نقاط دیگر به مغولستان بردند تا دانش مغولان را ارتقا بخشند و باعث پیشرفت کشور آنان شوند مغولان جاده هایی ساختند برای ایم نگه داشتن سفر از جاده محافظت کردند و بازرگانان را تشویق کردند در غلم رو آنان به تجارت بپردازند. این تلاش ها انتقال کالاها و تبادل اندیش های شرق و غرب را افزایش داد. چینیان با پزشکی و نجوم ایرانی آشنا شدند و ایرانیان به نوبه خود از طریق آشنایی با هنرها و علوم چینی به اطلاعات خود افزودند. ولی درست همونطور که کالاها و اندیشه ها از یک سر جهان به سر دیگر انتقال پیدا می کردند سپاه های مغل نیز چونین می کردند تسخیر آسیای میانه و ایران به دست مغلان دستاوردهای فرهنگ اسلامی را دوچار آسیب کرد بسیاری از شهرها و جمعیتها، تأسیسات و امکانات، کتاب ها و خزائن این تمدن ها از میان رفتند تاریخ نظامی نویسان قرن 20 میلادی ارتش مغل را یک نمونه نخستین برای نیروی نظامی مجهز به تانک و توپخانه کنونی به شمار می‌آورند و طی جنگ جهانی دوم فیلد مارشال اروین رومل آلمالی و ژنرال جورج پاتون آمریکایی نظم نظامی مغولان و زیرکی آنها در طرح های جنگی را تحسین کردند. سیاست چنگیزخان در تشکیل ارتشی بر مبنای پیروان وفادار به نمونهی برای تمام دولتهای کوچنشین بدلگردید. همچنین سیاست او در ترفیه نیروهای ارتش که بیشتر بر اساس لیاقت شخصی صورت می گرفت تا موقعیت اجتماعی برای صده های میان نوزهور بود. شاید موثرترین میراث مغولان از سال 1345 میلادی ریشه گرفته باشد. در این سال، هنگامی که ارتش اردوی زرین شهر کافا در ساحل دریای سیاه را محاصره کرده بود، بیماری مرموزی سپاه مغول را مبتلا کرد و بخش عمده از صفوف آنها را به هلاکت رساند. فرمانده مغول بجای آنکه به سادگی از محاصره دست بکشد و عقب نشینی کند، اجساد افراد خود را به وسیله منجنیق از بالای حسارها به داخل شهر پرتاب کرد و گذاشت تا بیماری بقیه را مبتلا کند شاید این نخستین نمونه ثبت شده ی جنگ میکروبی باشد بیماری شهر کافا را به نابودی کشاند و از طریق بازرگانان به دریای مدیترانه و اروپا سرایت کرد و از آنجا حتی تا گرینلند نیز رسید این تا اون که مرگ سیاه خانده میشد یک سوم جمعیت اروپا را نابود کرد و تلفاتی وارد آورد که با کشتار توسط هر سپاهی برابری میکرد. کرد که هم تجاوزکار و هم نوع آور بودند میراسی ماندگار از فن تبادل فرهنگی و تسخیر به جای گذاشتند مغولان با انتشار دانش و با ویرانگری موفق شدند فاصله های اجتماعی مذهبی و علمی میان جمعیت های مختلف را از میان ببرند اقدامات برجسته آنها هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ فرهنگی ترس و احترام میلیون ها نفر را برانگیخت و اجازه داد تا قبیلی از کوچنشینان بر غارهی حکومت کند